قصه های هزار یک شب شب بیست چهارم چون جده این سخند بشنید در خشم شد و به خادم گفت مگر پسر مرا به دکه تباخان برده ای؟ خادمک حراس کرده ماجرا پوشیده داشت و گفت به دکان نرفتیم ولی از دکان در گذشتیم. عجیب گفت به خدا سوگند به دکان اندر شدیم و خوردنی خوردیم و او را تعام بهتر از تعام تو بود عجیب برخاسته ماجرا به شمسدین باز گفت. شمسدین خادمک حاضر آورده با او گفت عجیب را از بحر چه به دکان تباخ برده ای؟ خادم از بیم خاجه گفت هاشا که من چنین کار کنم. عجیب گفت به خدا سوگند دروغ میگوید. به دکان تباخ رفته هبرمان را خوردیم و سیر شدیم. وزیر را خشم افزون گشت و از خادمک باز پرسید. خادم راست نگفت. وزیر با او گفت اگر سخن تو راست است بنشین و در برابر ما خوردنی بخور. خادم بنشست. سه لقمه خورده لقمه دیگر نتوانست خورد. در حار لقمه از دست بیافکند و گفت ای خاجه من از دوش سیرم. وزیر دانست که ایشان نزد تباخ رفتهاند آنگاه کنیزکان را فرمود که خادم را بر زمین انداختند و او را بیازردند. پس از آن شمسدین گفت اکنون سخن به راستی گو. خادم گفت ای خاجه ما به دکان تباخ رفته حب رمان خوردیم که در تمامت عمر چنان تعام نخوردم. آنگاه مادر حسن بدردین در خشم شد و براشفت. نصف دینار زرب خادم داده گفت به سوی آن تباخ شو و از حب رمان او ظرفی خریده بیاور تا خاجه بداند که کدام یک از این دو تعام نیکوتر است. در حال خادم به سوی تباخ رفت و با او گفت در خانه خاجه حب رمان پختند و ما به خوبی تعام تو گرو بستیم. این نصف دینار به و حب رمان بده و آن را خوب بساز که در سر تعام تو بسی آزار برده ایم. حسن بدردین بخندید و گفت به خدا سوگن این تعام را جز من و مادر من کس نتواند پخت و او اکنون در شهرهای دور است. پس از آن حسن بدردین ظرف بگرفت و حب رمان دران کرده مشک و گلاب بر وی بیامیخت. خادم آن را گرفته به خیمه ها بشه تابید. چون به منزل رسید مادر حسن بدرالدین ظرف تعام از خادم گرفته از آن بچشید. تعام آن بدانست و تباخ را بشناخت. فریاد برآورده بی خود بی وزیر مبهوت مانده گلاب بر وی همی افشاند تا به خود آمد. گفت اگر پسرم زنده است این حب رمان را جزو کس نپخته. از آنکه جز من او کسی حب رمان نتواند پخت. چون وزیر این سخن او را بشنید فرهناک شد. در حال برخاسته، بانگ بر خادمان زد و گفت بیستن از شما به دکه تباخ شوید و دکه او را ویران کنید و بازوان او را بسته بدین مکان بیاورید. ولی او را نیازورید. وزیر خود سوار گشته به نزد نایب دمشق شد و کتابی که سلطان مصر نوشته بود بر وی بنمود نایب دمشق کتاب بوسیده بر چشم نهاد پس از آن نامه را خوانده دید که نوشتهاند در هر ولایت که وزیر شمسالدین قریم خود را پدید آورد باید او را گرفته به دست وزیر سپارند نایب دمشق با وزیر گفت قریم شما کیست؟ گفت مردی تباخ نایب دمشق خادمان را فرمود که تباخ را گرفته به وزیر سپارند. خادمان به دکه تباخ خجوم آوردند. دکه تباخ را ویران و هرچه در آنجا بود شکسته یافتند. حسن بدردین با خود گفت کاش می دانستم که در حب رمان چه دیده اند که مرا این حادث روی داد. چون وزیر از نایب در گرفتن قریم اجازت خواست، بازگشت تباخ را بخواست. او را دست بسته حاضر آوردند. چون حسن بدردین را به ام خود شمسدین نظر افتاد، بگریست و گفت ای خاج گناه من چیست؟ وزیر گفت، تویی که حب رمان پخته ای؟ گفت، آری من پختم، مرا به گناه خیش آگاه کنید. وزیر گفت، همین ساعت تو را از گناه تو بیاگاهانم. پس از آن بانگ به خادمان زد که اشتران بیاورید. خادمان اشتران بیاوردند، حسن را به صندوق گذاشته بارها بر شتران بنهادند و فلفور روان شدند. در هر شب حسن بدردین را از صندوق به در آورده تعام میدادند و باز در صندوق میگذاشتند و به دین همی رفتند تا به مصر رسیدند و در زیدانیه فرود آمدند. وزیر فرمود حسن بدردین را از صندوق به در آوردند و نجاران خواسته به نشاندن چوب دار بفرمود حسن گفت چوب دار را بهرچه می خواهی وزیر گفت تو را به دار خواهم کرد حسن گفت گناه من چیست وزیر گفت حب رمان را نیکو نپخته بودی و آن را فلفل کم بود حسن گفت، حبس من بس نبود که میخواهی به سبب این گناه جزئی مرا بدار کنی؟ وزیر گفت، به همان گناه بایدت کشت. حسن بدرالدین محزون شد و در کار خود به فکرت اندر بود که شب برآمد. وزیر حسن را در صندوق گذاشته، گفت، فردا تو را بردار خواهم کرد. و چندان صبر کرد که حسن به خواب رفت وزیر سوار گشته روان شد و صندوق با او همی بردند تا به شهر در آمدند چون وزیر به خانه خود رسید با دختر خود ستالحسن گفت منت خدای را که جدایی از میان تو پسر امت برداشته اکنون برخیز و هجله بیارای و خانه را چنان فرش کن که در شب عروسی بود ستالحسن کنیزکان را بر این کار بفرمود. آنگاه وزیر ورقی را که صورت اساسی خانه بران نوشته بود گرفته فرمود که هر چیز را به مکان خود بگذارند بدان سان که اگر کسی ببیند آن شب را با شب عروسی فرق نکند. پس از آن وزیر ستالحسن را گفت که خیشتن را آرایش داده به هجل اندر شد. و با او گفت چون پسر امد نزد تو آید با او بگو که در آبخانه دیر کردی پس از آن با او بخسب و تا بامدادان با, با او حدیث کن پس از آن شمس الدین حسن بدردین را از صندوق به در آورده بند از او برداشته جامحای او برکند و پیراهنی بلند که در هنگام خواب میپوشید بپوشانید. و با همه این کارها بدرالدین در خواب بود. پس از آن از خواب بیدار گشت و خیشتن را در دهلیزی یافت روشن. با خود گفت «یا رب این خواب است یا بیداری؟ آنگاه برخواسته نرم نرم می رفت تا به در دیگر رسید و خود را در خانه دید که شب عروسی در آن خانه بود. و نظرش به ای که سریر در آن حجره بود بیفتاد و دستار خود بر فراز سریر بدید و ردایی را که بدری زر در میان او بود در کنار بالین یافت. گاهی پای پیش و گاهی پس بینهاد و با خود می گفت آیا خواب می بینم یا بیدارم که من اکنون در صندوق بودم؟ القصه حسن بدردین در قایت تعجب ایستاده حیران بود که ستالحوسن گوشه پرده برداشته با او گفت چرا نمیایی و از بحر چه در آبخانه دیر کردی؟ چون بدرالدین سخن او بشنید و او را بدید بخندید و آهسته آهسته پیش رفت و در قضیه خود حیران بود. ستالحوسن گفت از بحر چه حیرانی؟ تو در آغاز شب به نبودی؟ بدردین بخندید و گفت بیش از ده سال است که من از تو قایب بودم ستالحوسن گفت این سخنان چیست؟ نام خدا به گرده خویشتن بدم تو به آبخانه رفتی؟ بدرالدین گفت راست میگویی؟ کن چون من از نزد تو بیرون شدم در آبخانه خواب به من قلبه کرده در خواب دیدم که در شهر دمشق تباخم. تب گویا کودکی از عکابر زادگان با خادمکی به دکان من درآمدند و مرا با او چنین و چنان در میان رفت. آنگاه حسن بدردین دست بر جبین مالید و اثر سنگ بر جبین یافته گفت به خدا سوگند سخنان من صدق است. از آن که آن کودک سر من بشکست و گویا در خواب دیدم که حب رمان پختم و او را فلفل کم بوده است ولاکن من یقین دارم که در آبخانه چندین زمان نخوافتم که این همه خواب ببینم. ستالحوسن گفت تو را به خدا سوگند میدهم بازگو که زیاده برین در خواب چه دیدی؟ حسن تمامت ماجرا بیان کرد و گفت به خدا سوگند اگر من بیدار نمی مرا بردار می کردند. ستطلحسن گفت از بهر چه بردارت می کردند؟ حسن گفت از آنکه حبر رمان مرا فلفل کم بود. گویا دیدم که دکه مرا ویران کردند و زرفهای مرا بشکستند و مرا در صندوقی حبس کردند. پس از آن چوب دار بنشندند و همی خواستند که مرا به دار کنند. اگر بیدار نمی مرا به دار می کردند. آنگاه ست حسن بخندید و او را در آغوش گرفته با یکدیگر بخفتند بخفتند ولیکن حسن بدردین تا بامدادان در کار خود حیران بود. حال صبح شمس دین وزیر نزد حسن بدردین شده او را سلام داد حسن را چون چشم برو افتاد گفت تو نه آنی که مرا به جرم ناپسند افتادن حب رمان بازوان بسته به صندوق اندر کردی و همی خواستی مرا بردار کنی؟ وزیر گفت ای فرزند حق آشکار شد و راز پوشیده هویدا هو گشت تو پسر برادر منی و من این کارها نکردم مگر از بهر آنکه بدانم که در شب عروسی نزد دختر من تو بوده ای یا نه. چون تو را دیدم که خانه و دستار و ردای خود شناختی، دانستم که تو پسر برادر منی و اکنون بدان که من مادرت را از بسره آوردم. پس از آن وزیر او را در آغوش گرفته، بگریست و حسن نیز گریان شد. بعد وزیر فرمود عجیب را حاضر آوردند. حسن بدردین او را بدید. گفت همین است آنکه سنگ بر جبین من زد. وزیر گفت این پسر توست. آنگاه حسن بدردین او را در آغوش گرفته گفت منم که دیده به دیدار دوست کردم باز. چه شکر ای پاوت شاه بند نواز؟ امید قد تو می‌داشتم ز بخت بلند نسیم زلف تو میخواستم ز عمر دراز آنگاه مادر حسن پیش آمده خود را بر وی انداخت و این دو بیت خواند روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت و کار آخر شد آن پریشانی شبهای دراز و قم دل همه در گی گیسو نگاه آخر شد پس از آن مادر حسن ماجرای خود با پسر باز گفت و شکر پروردگار به جا آوردند وزیر نزد سلطان رفت و تمامت قصه بر وی فرو خاند. سلطان را عجب آمد و فرمود که این حکایت بنویسند و در خزانه نگاه دارند پس از آن شمسدین وزیر با پسر برادر و سایر پیوندان در عیش و نوش به سر می بردند تا آنکه بر همزننده لذات و پراکنده کننده جماعات بر ایشان بتاخت. جعفر وزیر حکایت به انجام رسانید خلیفه هارون الرشید گفت ای جعفر طرف حدیثی گفتی و خوش حکایت راندی انگاه خلیفه کنیزکی از خاسان خود بر آن جوان که زن خود را کشته بود بداد و او را شغلی سپرد چون شهرزاد قصه به پایان رسانید گفت ای ملک پیروز بخت این حکایت ترفتر از حکایت خیاط و اهدب و یهودی و مباشر و نصرانی نیست ملک گفت حکایت ایشان چگونه بوده است؟ شهرزاد گفت نکایت و اهدب و یهودی و مباشر و نصرانی شنیدم که در زمان گذشته در شهر چین خیاطی بود نیکبخت و فراوان روزی که نشات و ادب دوست می داشت و پاری وقتها بازن خیش به تفرج می رفتند. روزی هنگام بامداد از بحر تفرج برآمدند. و شامگاه به سوی منزل باز گشتند. در سر راه گوش پشتی را یافتند که دیدن او خشمگین را خنداندی و محزون را غم از دل بردی خیات بازن خود برای دیدن او پیش رفتند پس از آن خواستند که او را به خانه خیش برده با او ندیم شوند و مذهکش کنند اهدب دعوت ایشان را اجابت کرده با ایشان برفت. در حال خیاط به بازار شد. ماهی بریان گشته و نان و لیمو خریده بازگشت و به خوردن بنشستند. زن خیاط پاری بزرگ از گوشت گرفته در دهان اهدب فرو برد و دست بر دهانش نهاده گفت باید این لقمه نخاییده به یک نفس فرو برید. اهدب ناچار لقمه فرو برد و استخانی در راه گلوی او گرفته در حال بمرد سبد اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.